نام خدا. قصه ها و افسانه های مردم ایرلند به روایت آیلین آفولین و ترجمه محمد گذرآبادی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای صوتی به مدیریت محمد بوستانی گوینده آرزو انصاری Thank you. زاده ای که اطاعت نکرد سالها قبل پادشاهی بود که تمام ثروت سرزمینش رو برا خودش میخواست چون براستی آدم حریسی بود اون 6 تا بچه داشت، سه تا پسر و سه تا دختر وقتی شنید که همه اونا میخوان ازدواج کنن و در آرزوی ازدواج هستن خیلی ناراحت شد چون نمیدونست پول لازم برای جشن عروسی و جهیزه اونا رو از کجا بیاره تو اون سرزمین پیرمرد نابینایی زندگی می کرد که همه اونو خیردمند و دانا میدونستند. اسمش جان نابینا بود پادشاه رفت تا با اون در باره ازدواج فرزندانش صحبت کنه و بپرسه که چطوری می تونه پول زیادی خرج نکنه جان نابینا گفت که باید سه روز و سه شب در این باره فکر کنه و هر یک از این سه روز تنها سه لقمه نون بخوره و سه قطر آب بنوشه البته بر این باید خودش رو تو اتاقی حبس کنه و کسی هم نزدیکش نره. جان نابینا کاری رو که گفته بود کرد و بعد از سه روز پیش پادشاه اومد و گفت تو این کشور نزنی هست که از ثروت کافی برای ازدواج با پسرای شما برخوردار باشه، نه مردی که ثروت کافی برای ازدواج با دخترای شما داشته باشه. و اگه ثروتتون رو برای عروسی اونا خرج کنید، شما و همسرتون فقیر و بیچیز میشین. بنابراین نصیحت من به شما اینه که فرزندات هرگز ازدواج نکنن و به این ترتیب ثروتت سر جاش میمونه پادشاه دید که جان نابینا راست میگه و به نصیحتش گوش کرد اون وقت فرزنداشو احزار کرد و اونا هم موافقت کردن که به حرف پدرشون عمل کنن اما پسر سوم به هر دلیل تسلیم خواسته پدرش نشد و از پذیرش اون سرباز زد پادشاه گفت اگه با پیشنهاد من موافقت نکنی تو و خواهرت رو از قصر بیرون میکنم پسر گفت اهمیتی نمیده و اون موقع پادشاه اون و خواهرش رو از قصر اخراج کرد. اونا هم به دنبال بخت خودشون تمام روز و راه رفتن و رفتن تا اینکه روشنایی روز جاشو به تاریکی شب داد. از قضا اون شب هوا طوفانی شد و باد و بارون تندی گرفت. در این زمان اونا به جنگل تاریک رسیده بودن و از سرما و گرسنگی خیلی اذیت میشدند. نمیدونستند کجا باید یه لغم غذا و یه جا برای خواب پیدا کنن. دختر گریه و شکایت کرد و گفت که بهتره به خونه برگردن و مثل دو خواهر و برادر دیگهشون بخواسته پدرشون عمل کنن. شاهزاده گفت که هر بلایی سرش بیاد حاضر نیست که بخواسته پدرش عمل کنه و همین موقع نوری و وسط جنگل دیدن. و به سمت اون حرکت کردن وقتی به محل نزدیک شدن یه خونه بزرگ دیدن شاهزاده رفت و برای شب تقاضای سرپناه کرد تو خونه زن و مرد پیری کنار آتیش نشسته بودند. پیرمرد اجازه داد تا اونجا بمونن و به اونا خوش آمد گفت شاهزاده گفت خواهرم هم با منه و اگه به اون پناه ندین من اینجا نمیمونم پیرمرد گفت به خواهرت هم جا میدیم شاهزاده خواهرش رو هم آورد و به اتفاق کنار آتیش نشستند وقتی شامشون رو خوردند دوباره کنار آتیش نشستن و پیرمرد از دو جوون پرسید که کی هستن چون به نظرش میرسید که خوب تربیت شدن شاهزاده گفت که اونا به راستی خوب تربیت شدن و بعد تعریف کرد که چه اتفاقی برشون افتاده و چرا از خانه ترد شدن پیرمرد گفت اگه قصه تو راست باشه پس به اینجا خیلی خوش اومدی چون من یه نجیب زادم من مرد ثروتمندی هستم و زمینهای زیادی دارم. اگه پیش من بمونی بعد از مرگم تمام ثروت و زمینا رو به تو میدم. همسرم هم ثروت زیادی داره و او هم ثروتش رو به خاطرت میده. شاهزاده خیلی تشکر کرد و گفت که پیش اون میمونه. اون وقت همگی به تخت خواب رفتند و صبح روز بعد بیدار شدن و صبحونه خوبی خوردند. نجیب زاده گفت حالا با من بیا تا همه جا رو نشونت بدم، چون اگه از زندگی در اینجا راضی نباشی، تو رو مجبور به موندن نمی کنم. بنابراین اونا رفتن تا نگاهی به زمینهای نجیبزاده بندازن و شاهزاده از چیزهایی که دید بسیار خوشش اومد. نجیبزاده گفت، فردا تمام کسانی که زمین های اجاره کردن جمع میشن. تا الف از بیش زار به اینجا بیارن از تو میخوام که این سگ سفید کوچیکو ببری و تو دشت که اونجاست به نگهبانی از گله گوسفندی که مشغول چرا هستن بذاری گله از اینجا دور نمیشه تا چاق ترین قوچ به زمین بیفته و از شدت چاقی خفه بشه بعد اون قوچ رو بیار خونه تا برای مستجر را غذا درست کنم شاهزاده سگ سفید کوچیکو برداشت و به دشت رفت سگو به نگهبانی از گله گوسفندا گذاشت و هنوز راه زیادی رو با اونا نرفته بود که چاقترین گوچ به زمین افتاد و از شدت چاقی خفه شد. مرد جوون خم شد تا گوچ رو برداره که دید یه دختر همراه سه سگ به اون نزدیک میشن، دختر به اون سلام کرد و گفت اگه لطف کنی و اون قوچو به من بدی در عوض این سگا رو به تو میدم اسم این سگ باربره و اونقدر قویه که میتونه هر باری رو هر چقدر هم که سنگین باشه حمل کنه این سگ خیلی به دردت میخوره شاهزاده از دادن قوچ خودداری کرد و گفت من اینجا غریبه و تازه همین دیشب اومدم ممکن اربابم راضی نباشه که قوچ رو با سگ عوض کنم اما دختر اونقدر التماس کرد که آقا گوچ قوچ رو در برابر سگ قدرتمند به اون داد شاهزاده بار دیگه سگ کوچیک سفید رو به نگهبانی از گله گذاشت و طولی نکشید که باز هم چاقترین قوچ به زمین افتاد و از شدت چاقی خفه شد دختر دوباره اومد و گفت که برای شاهزاده بهتر اون گوچ رو هم به اون بده و در عوض یکی دیگه از سگها رو که اسمش توندرو بود برداره چون توندرو اونقدر سری بود که میتونست از هر پرنده و جانوری سبقت بگیره و بسیار به دردش میخورد. شاهزاده گفت که شاید اربابش از این معامله خوشش نیاد اما بازم دختر اونقدر اصرار کرد که اون بالاخره راضی شد تا گوش رو با سگ توندرو عوض کنه. اون وقت برای بار سوم سگ کوچیک سفید رو به نگهبانی از گله گذاشت و تولی نکشید که چاقترین قوچ به زمین افتاد و از شدت چاقی خفه شد. دختر گفت برای تو بهتری که اون رو هم به من بدی و من در اول سگ سومو به تو میدم. این یکی ماده است و اسمش همه چیز دانه. اون از چنان عقل و دانشی برخورداره که اگه هر اتفاقی تو این کشور یا هر جای دیگه دنیا بیفته آگاه میشه از این گذشته سگایی دیگه به دردت نمیخورن مگر اینکه همه چیزدان هم با اونا باشه طولی نخواهد کشید که همه اونا به دردت بخورن و عاقبت موفق شد تا شاهزاده رو به عوض کردن گوچ سوم با سگی که همه چیزدان اسمش بود راضی کنه وقتی شاهزاده به قصر برگشت نجیبزاده بیرون منتظرش بود. شاهزاده همه چیز رو براش تعریف کرد و گفت که چگونه ستا قوش چاق گله رو در ازای سک ها داده. نجیبزاده گفت اگه معامله خوبی کرده باشی نفع اون هم به خودت میرسه و اگه معامله بدی کرده باشی باز هم خودت زیان خواهی کرد. بنابراین من حرفی ندارم. صبح روز بعد مستجرهای نجیبزاده جمع شدن و تمام روز به حمل علف از بیش زار به دم در خونه گذشت. شب هنگام نجیبزاده زیافت بزرگی براشون ترتیب داد. روز بعد شاهزاده به نجیبزاده گفت که قصد داره برای شکار به جنگل بره و این در صورتی ممکن میشه که نجیبزاده لطف کنه و رو به اون قرض بده. نجیبزاده گفت دوست ندارم به اون جنگل بری؟ چون من هفت پسر داشتم که همهشون اونجا گم شدن با وجود این شاهزاده گفت که دوست داره برای یه روز شکار به جنگل بره چون به شکار عادت داره و از چیزی تو دنیا نمی ترسه. و این کارم کرد با تفنگ و سگش به جنگل رفت در حالی که تو جنگل پیش می رفت به دسته های زیادی از بهترین پرنده های وحشی برخورد مدتی بعد شروع به شکار اونا کرد و قدر تیر انداخت که کپهی بزرگ از پرنده ها درست شد. بعد سگ قدرتمند باربر اونا را به پشت گرفت تا به خونه ببره. وقتی شاهزاده برگشت نجیبزاده بیرون منتظرش بود، و از اینکه اونو صحیح و سالم میدید اونقدر خوشحال شد که به استقبالش رفت همون موقع هم تعدادی از پرنده ها رو پرکندن و شام مفصلی درست کردن صبح روز بعد شاهزاده بازم با تفنگ و سگاش به جنگل رفت تعداد پرنده هایی که روز دوم دید سه برابر روز قبل بود اونقدر شلیک کرد که دو کپه بزرگ از اونو تشکیل شد بعد به باربر دستور داد تا اونو رو به پشت بگیره و به خونه ببره و سکم این کرد و هیچ مشکلی پیش نیومد اون روز هم نجیب نجیبزاده بیرون خونه منتظرش بود و وقتی دید که داره میاد با خوشحالی به استقبالش رفت. این بار شاهزاده اونقدر پرنده آورده بود که برای مصرف سه ماه خونه نجیبزاده کافی بود. شاهزاده روز بعد پس از خوردن صبونه یک بار دیگه به همراه تفنگ و سگش راهی جنگل شد. این بار بیش از روزهای قبل در اعماق جنگل پیش رفت و سه برابر روز قبل پرنده دید. اونقدر شلیک کرد که کوهی از پرنده های مرده درست شد. بعد به سگ باربر دستور داد تا اونا رو به پشت بگیره و به خونه ببره. سگ هم اطاعت کرد. تو راه خونه مسافت زیادی طی کرده بودن که سگا هر سه ایستادن و به هم نزدیک شدن. انگار تو گوش هم چیزی زمزمه می کردن. هنوز مدت زیادی از در گوشی حرف زدن اونا نگذشته بود که شاهزاده، گول بزرگی رو دید که نزدیک میشه قول دهنش باز کرده بود طوری که انگار میخواست همه اونا رو بخوره باربر پرنده ها رو پایین انداخت و پرید و گلوی غول و گاز گرفت دو سگ دیگه هم بدن غول رو پاره پاره کردن قول به شاهزاده التماس کرد قبل از اینکه سگا جانش رو بگیرن اونا رو دور کنه و قول داد که من در ازای این کار قصر و تمام ثروتمو به تو میدم قصر من زیباترین قصر دنیاست. تمام درای اون از طلا و نقره است و هر گوشه اون رو که نگاه کنی انباشته از جواهر و سنگای قیمتیه. تنها کاری که باید بکنی اینه که منو تو صندوق بزرگ خودم بندازی و در اونو رو قفل کنی. بعد دیگه لزومی نداره از بابت من نگران باشی. شاهزاده به سگا دستور داد که دست از سر قول بردارن و بعد به سگ قدرتمند فرمان داد تا قول رو به پشت بگیره و تا قصر خودش حمل کنه. اونا رفتن و رفتن تا به قصر قول رسیدن اون وقت اونو داخل صندوق بزرگی که تو قصر بود زندانی کرد و در صندوق و بستن و قفل کردن شاهزاده گشتی تو قصر زد هیچ سوراخ یا گوشه ای نبود که انباشته از طلا و نقره و سنگای قیمتی نباشه بعد برای خودش و سگا شام درست کرد وقتی سگا شامشون رو خوردن روی سندلی قول پریدن و تا صبح همونجا خوابیدن شاهزاده اونقدر گشت تا تخت خواب بزرگ قولو پیدا کنه و به ترین خواب زندگیش فرو رفت شاهزاده صبح روز بعد از خواب بیدار شد و برای خودش و سگا صبحونه درست کرد بعد با خودش فکر کرد که دنبال خواهرش بره تا با هم تو قصر زندگی کنن بنابراین راه خونه نجیبزاده زاده رو پیش گرفت نجیبزاده زاده طبق معمول بیرون خونه منتظرش بود و خوشامدگویی به او گفت بعد از اینکه اون رو و سالم دید خیلی خوشحال شد اون از شاهزاده پرسید که چرا شب قبل به خونه نیومده و شاهزاده گفت که قول جنگل به اون حمله کرده بود نجیبزاده زاده گفت آه این همون جنایتکار پلیدیه که هفت پسر منو کشت شاهزاده جواب داد ولی قول میدم که دیگه هرگز کسی رو نخواهد کشت. بعد برای نجیبزاده تعریف کرد که چه بلایی سر قول آورده و چه ثروتی در قصر اون پیدا کرده و بعد ادامه داد حالا اومدم خواهرمو ببرم تا چند وقتی تو اون قصر زیبا زندگی کنیم نجیبزاده گفت ولی بهتر ثروتی رو که تو قصر پیدا کردی به اینجا بیاری چون اونجا تلسم شده و دست قدرت های جادوییه و معلوم نیست اونجا چه بلایی سرتون بیاد. شاهزاده گفت من از تلسم و جادو ترسی ندارم. اون قصر از نظر زیبایی و راحتی در دنیا نظیر نداره و من میخوام اونجا زندگی کنم. به این ترتیب شاهزاده خواهرش رو با خودش به قصر قول برد. دختر از اونجا خوشش اومد و اونا با خوشحالی اونجا ساکن شدن. اما هنوز مدت زیادی نگذشته بود از اقامتشون که یه روز شاهزاده به خواهرش گفت میخواد به شکار بره و از اون خواست که از قصر به خوبی مراقبت کنه. و فنگش و برداشت و به اتفاق سه سگ حرکت کرد. هنوز راه درازی نرفته بود که قول از سوراخ قفل صندوق سر صحبت و با زن جوون باز کرد. با چرب به اون گفت که سخت آشقش شده و چاپلوسانه ادامه داد چرا در صندوق و برون باز نمیکنی تا با تو ازدواج کنم و قصد رو برای خودمون برداریم و همینطور هم شد. دختر در صندوق باز کرد و با قول قرار گذاشت که برادرش رو بکشه تا قصر حقیقتاً مال خودشون بشه. گول گفت حالا برو پایین و شمشیر نورانی منو از اتاق بیار و اینجا بالای در آویزون کن. وقتی برادرت وارد بشه شمشیر پایین میفته و سرش رو قطع میکنه دختر کاری رو که گول خواست انجام داد و شمشیر نورانی رو بالای در آویزون کرد. شاهزاده هنوز راه درازی نرفته بود که سگو نشاستن رو در گوش هم پچ پچ کردن بعد هم برگشتن و راه بازگشت به قصر رو در پیش گرفتن اون وقتی دید سگا دارن برمی با خودش فکر کرد که حتما گول با جادو از صندوق بیرون اومده و خواهرشو رو کشته پس اونم برگشت و با آخرین سرعت به سمت قصر دوید در قصر قول به دختر هشدار داد که دائما مراقب باشه از ترس اینکه مبادا برادرش زودتر از اون که انتظار میرفت برگرده و بعد گفت اگه اون سگا بیان منو تک تکه تکه می دختر خیلی زود دید که برادرش با آخرین سرعت داره میاد در حالی که سگا پیشاپیش اون در حال دویدن هستند سگا اونقدر زود پشت در رسیدن که قول فقط وقت کرد داخل صندوق بپره و در رو خودش ببنده توندرو همون سگی که بسیار سری میدوید با سه پرش و قبل از بقیه خودشو به در قصر رسوند وقتی داشت وارد اتاقی میشد که صندوق گول تو اون بود شمشیر نورانی روی اون افتاد و نک دومش رو قطع کرد دختر فوراً شمشیر نورانی رو برداشت و قایم کرد اون وقت برادرش وارد شد و از اون پرسید که آیا اتفاقی تو قصر افتاده دختر گفت که هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چیز رو به راهه شاهزاده گفت وقتی دیدم سگو برگشتن فکر کردم حتماً گول از صندوق بیرون اومده و تو رو کشته. دختر گفت اصلا نگران نباش. از صبح که رفتی اون جونور زشت از جاش تکون نخورده. صبح روز بعد شاهزاده دوباره به جنگل رفت و سگا رو با خودش برد. وقتی دختر از رفتن برادرش مطمئن شد قفل صندوق باز کرد و گول آزاد کرد. گول گفت حالا بهترین کار اینه که برادرتو مجبور کنیم سگاشو تو یکی از این اتاقها حبس کنه و بعد میتونیم هر کاری که خواستیم با اون بکنیم. اون روز هم مثل روز پیش شاهزاده هنوز دور نشده بود که سگا دوباره برگشتند. شاهزاده با آخرین سرعتی که داشت اونا رو دنبال کرد چون میدونست حتما اتفاقی تو قصر افتاده. این بار هم دختر از دور مراقب بود و به محض دیدن سگا گول خبر کرد. گول دوباره به درون صندوق پرید و دختر قبل از اومدن سگا در رو روی اون قفل کرد. برادر وارد شد و از دختر پرسید آیا در قیاب اون اتفاقی افتاده؟ اما دختر گفت که هیچ اتفاقی نیفتاده و اصلا نمیدونه چرا سگا برگشتن و ادامه داد اما وقتی این سگا مثل گرازای وحشی دورم میدونن از اونا میترسم خوشحال میشم اگه امشب اونا رو تو یکی از اتاقا زندانی کنی چون تا وقتی تو قصر میچرخن من آروم و قرار ندارم شاهزاده گفت که خیلی دوست داره رو خوشحال کنه اما تمایلی به زندانی کردن سگا نداره و ادامه داد این سگا دوستان مورد اعتماد منن و آزارشون هم به کسی نمیرسه پس چرا باید اونا رو زندانی کنم دختر خیلی عصبانی شد و سگا رو زد و از روی صندوق جایی که همیشه دراز میکشیدن پایین انداخت اما یکی از سگا برگشت و انگشت اونو گاز گرفت دختر داد و فریاد را انداخت و وانمود کرد که سگ بد جوری زخمیش کرده و به برادرش گفت که اونا خطرناکن و باید کشته بشن. برادر گفت که سگا رو با خودش به یه جای دیگه ای از قصر دور از چشم اون میبره اما اونا رو زندانی نمی‌کنه. وقتی شاهزاده خواهرش رو ترک کرد دختر به فکر فرو رفت که چطور هم از شر سگا و هم از شر برادرش خلاص بشه. بنابراین آخرای شب پیش برادرش اومد و گفت که زخم گاز سگ رو دستش خیلی درد میکنه و به هیچ ترتیبی خوب نمیشه. مگر اینکه اونو به زبان گاوی جادویی که در شرق دنیا زندگی میکنه بماله و اگه برادرش به شرق دنیا نره و زبان گاوی جادویی رو براش نیاره حتما می دختر میدونست که تا حالا هیچ شکست کسانی که به اون گاو نزدیک شدن جون سالم به در نبردن شاهزاده کشتی بزرگ قول و آماده سفر کرد. آذوقه یه سال و یه روزو تو اون گذاشت. بادواناشو به دست باد سپرد و به همراه سگاش راهی دنیای شرق شد. اما یک روز دختر پادشاه دنیای شرق داشت در ساحل قدم میزد که دید کشتی زیبایی نزدیک میشه. اون سخت تعجب کرد خصوصا وقتی جوان خوش قیافه رو روی کشتی دید که فقط سه سگ اونو همراهی میکردند. شاهزاده به دختر ادای احترام کرد و دختر به اون خوش آمد گفت و اونو پیش پدرش برد. شاهزاده به پادشاه گفت که برای بردن زبان گاو جادوی به دنیا شرق اومده پادشاه گفت: از شنیدن این حرف متاسفم چون هنوز کسی از پیش اون سالم برنگشته زمین اطراف اون تا هفت مایل خشک و بی آب و علفه چون اون هر موجود زنده ای رو که ببینه کوچیک و بزرگم نداره میکشه. دختر پادشاه وقتی شنید که شاهزاده قصد جنگیدن با گاورو داره گلیه کرد و از اون خواست که نره چون از لحظه اول که چشمش به اون افتاده یه دل صد دل عاشق شده اما شاهزاده گفت که قول داده با گاو به جنگ و زبونش رو برای درمان خواهرش ببره و از دختر خواست که در قیابش از سگ به خوبی مراقبت کنه چون اونا حقیقتا دوستای وفاداری هستند. صبح روز بعد شاهزاده به جنوب کشور رفت گاو همین که اونو دید از دور آنچنان ماقی کشید که در دورترین گوشه دنیای قرب هم شنیده شد بعد شاخاشو پایین آورد و با تمام سرعت دوید تا شاهزاده رو نابود کنه. در همون لحظه سگا صدای گاو رو شنیدن و سگ دانا یا همون همه چیز فهمید که جان اربابش از سوی گاو جادویی که هیچ موجود زنده قادر به کشتنش نیست در خطره سگا مدتی با هم آروم صحبت کردن و بعد از روی دیوار قصر پادشاه دنیای شرق پریدن و با آخرین سرعت به سوی صاحبشون دویدن، گاو وحشی به شاهزاده خیلی نزدیک شده بود و چیزی نمونده بود که اونو شاخ بزنه. اما سگ دونده توندرو قبل از بقیه به گاو رسید و دومشو به دندون گرفت. گاو چرخید تا اونو بکشه اما توندرو خیلی سریعتر از اون بود و گاو نمیتونست اونو بگیره. توندرو گاو رو دنبال خودش اون قضر چرخوند و چرخوند تا دوتا سگ دیگه هم اومدن. سگ قدرتمند یا همون باربر پرید روی گاو و دندوناش رو تو دماغ و اون فرو کرد و مجبورش کرد که وایسته و همین زمان دو سگ دیگه به اون حمله کردن. سرانجام گاو رو زمین زدن و شاهزاده زبونش رو برید و با خودش به قصر برد. شاهزاده خانوم وقتی اون رو صحیح و سالم دید خوشحال شد اما روز بعد وقتی شاهزاده گفت که باید به کشورش برگرده از همیشه غمگین تر بود و آروم و قرار نداشت تا اینکه شاهزاده به اون گفت، یک سال و یه روز دیگه برمیگرده که با هم ازدواج کنن شاهزاده هرگز حرفی نمیزد که حقیقت نداشته باشه شاهزاده و سگاش سوار کشتی شدن و در دریا رفتند و رفتند تا به قصر قول بزرگ رسیدن خواهر شاهزاده از دیدن اون سخت تعجب کرد و گفت که از درد دست تا آستانه مرگ البته فقط تظاهر میکرد شاهزاده زبان گاو جادویی رو به دستش مالید و دختر وانمود کرد که دردش ساکت شده بعد به شاهزاده گفت که قول بزرگ یک روز صندوق و شکسته و آزاد شده اما چون از سگها خیلی میترسیده پا به فرار گذاشته و اون از اون لحظه دیگه قولو ندیده اون وقت شاهزاده هارون که در دنیای شرق دیده بود برای خواهرش تعریف کرد و گفت که قراره باید شاهزاده خانوم ازدواج کنه و اون هم باید به جشن عروسی برادرش بیاد. دختر پذیرفت اما به این شرط که شاهزاده سگا رو با خودش نبره چون اونقدر از سگا وحشت داشت که با اونا سوار کشتی نمیشد. شاهزاده از روی ناچاری سگا رو تو قصر قول گذاشت و به اتفاق خواهرش سوار کشتی عازم دنیای شرق شد. دختر پادشاه دنیای شرق از دیدن شاهزاده خوشحال شد و اونا بعد از چند روز با هم ازدواج کردن. اون وقت خواهر شاهزاده پیش پادشاه دنیای شرق رفت و از اون خواست که اجازه بده تخت عروس و داماد رو آماده کنه و پادشاه هم به اون اجازه این کار رو داد. دختر که شمشیر نورانی قول رو بدون اطلاع برادر با خودش آورده بود، اونو بالای تخت آویزون کرد و وقتی برادرش روی تخت رفت، شمشیر افتاد و اونو کشت. خواهر شاهزاده پیش پادشاه دنیای شرق رفت و به اون گفت که دختر خودش شاهزاده خانوم برادرش رو با شمشیر کشته پادشاه دنیای شرق حکم کرد که شاهزاده خانوم یعنی دختر خودش رو به خاطر جرم وحشتناک کشتن شوهرش بسوزونن اما اضافه کرد که چون درباره دختر خودش حکم کرده سوزاندن اونو یه سال و یه روز به عقب بندازن از اون طرف سگا هم به خاطر از دست دادن صاحبشون سخت، ناراحت و غمگین بودن و روز و شب یک سر پارس می و زوزه می بعد از یک یا دو روز سگ با هوش همه چیز داند فهمید که گول در یکی از اتاقهای طبقه اول مخفی شده. پس هر سه پایین دویدن تا اونو تک تک کنند. اما در سنگین اتاق قفل بود. سگ قدرتمند باربر شونش رو به در تکیه داد تا اونو بشکنه اما قول هم از داخل به در فشار آورد و باربر نتونست اونو خورد کنه سگا پنجه هاشون به در کشیدن اونا رو با دندوناشون جاییدن و مدت زیادی طول نکشید که سوراخش کردن اما وقتی از سوراخ رد شدن قول در حال فرار از در دیگه اتاق بود اون با آخرین سرعتی که داشت در جنگل ناپدید شد. سگا دنبالش رفتن تا به احماق جنگل رسیدن. اونجا قول رو بر بالای بلندترین درخت جنگل پیدا کردن. سگا به قول که بالای درخت بود نگاه میکردن و قول هم به اونا که پایین بودن نگاه میکرد. و دیگه ترسی از اونا نداشت چون میدونست که قادر نیستن از درخت بالا بیان. سگا همونجا زیر درخت نشستن و در گوش هم زمزمه کردن بعد از مدتی باربر سگ قدرتمند بلند شد و شونش رو به تنه درخت تکیه داد و اونقدر اون رو به جلو و عقب هل داد که آغبوت با صدای مهیبی به زمین افتاد گول هم با درخت افتاد و گردن شکست و در جا کشته شد سگا تصمیم گرفتن دنبال صاحبشون به دنیای شرق برن اما نمیدونستن چطور از دریا عبور کنن راه بیشتر از اون بود که بش شنا کرد و اونو نکشتی داشتن و قایق سگ هوشمند به فکر فرو رفت تا چاره ای کنه و بعد از مدتی گفت که میدونه قایقی که از ماهیگیرا کجا بسته شده و اون محل چندان دور نیست. اون گفت که میتونن اون قایق رو بردارن و فوراً حرکت کنن. اون وقت هر سه نفرشون حرکت کردن و قایق رو پیدا کردن. بعد تنابهای مهار قایق رو با دندون بریدند و همه چیزدان یک سکان برای قایق ساخت اون وقت بادبانها با رو کشیدن و طوری که انگار هیچ چیز جلودارشون نیست به سوی دنیای شرق حرکت کردند وقتی به اونجا رسیدن بی آنکه در قصر توقف کنن، فوراً سر قبر صاحبشون رفتن و زمین رو اونقدر با پنجه کندن که به جسد رسیدن اون رو بالا آوردن و سر تا پاشو لیسیدند و ناگهان شاهزاده مثل قبل سر حال و سالم از جا بلند شد شاهزاده پیش پادشاه دنیای شرق رفت و گفت که قاتل دختر اون نبوده بلکه خواهر خودش بوده و این کار رو با شمشیر نورانی قول انجام داده و خواهر دروغین و هیلگر رو تو همون آتیشی انداختن که برای سوزاندن شاهزاده خانم آماده کرده بودند شاهزاده با پدرزنش خداحافظی کرد و به همراه زن و سگ‌هاش به سوی قصر قول بزرگ بادبان کشید در راه رفتن کشتی، همون دختر جوونی رو دید که سگا رو به او داده بود. دختر نزدیکش اومد و گفت وقتی تو از خونه رفتی مادرت از قصه مرد و من پیکی هستم که او از دنیای دیگه فرستاده تا در موقع خطر کمکت کنم. تو دیگه به سگا نیازی نداری چون قول بزرگ مرده و تلسم قصر شکسته. قصر و هرچی در اون هست از این به متعلق به تو و همسرته. اون وقت با اون خداحافظی کرد و سگار و صدا زد و از اونجا دور شد. شاهزاده و همسرش سالهای سال در قصر با خوشبختی زندگی کردند و بچه هاشون و بچه های بچه هاشون هم در اونجا خوش و خوشبخت بودن. هنوز هم تعدادی از بچه های بچه هاشون اونجا زندگی می‌کنن. اما حتی یک نفر از اعقاب پادشاه پیر که نصیحت بدی به فرزنداش کرده بود روی زمین زنده نمونده. پایان. کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me مهران دوستی t.me slash m-e-h r-a-n u s نشانی وبلاگ ما m e h r